بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد حضرت يوسف عليه الصلاة والسلام با زمانی که پاکی خودش را به اصبات نرسان از زندان بیرون نآمد، نا علتی که شرط گذاشت اول باید پاکی حضرت یوسف علیہ السلام بیان شود بعد از زندان بیرون می آیند این بود که میدانست در این زمان پادشاه و دربانیان به یوسف علیه صلات و نیاز دارند و حالا حرف او بیشتر خریدار و مشتری دارد و زودتر هم تبرعه می شود اگر بیرون می آمد امکان داشت که این مسئله تبرئه و قاطی حضرت یوسف علیه و السلام را به تأخیر بی اندازان، بعدا می بعدها مردم را جمع می کنیم بعدا پشتی پرسیب. اما وقتی که حضرت یوسف علیه و السلام این شرط را گذاشت، بهتر توانستند که قاطی و تبرئه خودشان را به اثبات برسانند. وقتی که قبرعی حضرت یوسف علیہ السلام بی استفاد رسید پادشاہ محتاج و مشتاق دیدار حضرت یوسف علیہ السلام شد برای سریع بعد دوباره قاصد را فرستاد که علب رو یوسف علیہ السلام را بی آوا. بعضی روایت نیآین قبل از اینکه که برسه به زندان جبرائیل امین علیه صلات و سلام اومد پیش حضرت یوسف علیه صلات و سلام فرمونه اللہ دعا بکن دعا بکن که الله رب العالمی ترا بهترین جا و بهترین مخرج نصیب فرماین و فرمودن که الله مرزوگ نیم حیث و لا احتسید خدا از جایی اصلا من نمی دونم به من این آیت بفرما با یک اعزاز خیلی بزرگ یوسف و السلام را از زندان بیرون کردن وقتی که بکاخ پادشاه رسید تبقی از روایات اون جمال جهان آرای حضرت یوسف علیہ السلام و سلام و حیبت پیغمبرانه ایشان پادشاه رو مرعوب کرد و پادشاه از تختش پایین آمد یوسف را سجده کرد بعضی از مفسرین چیزی گفتی گفتن و این هم بعید نیست زمانی که داخل مکه مکرمه ابرهہ اون شترای عبدالمطلب را گرفته بود و عبدالمطلب پدر بزرگ نبی مکرم سلام صلی اللہ علیہ وسلم رفتن به مینا و در مینا با عبریه ملاقات کرد عبریه وقتی دید اون حیبت عبد المطلب را اون جمال او را در وجود اون نور نبوت و نبی مکرم سلام از نسل او بود میگن که خود عبریه از تختش پایین اومد نتونست که عبد المطلی بالاو بره در شانش نبود برای خودش اونو مصابی خودش نمی حساب نمی کرد اما خود پادشاه از تختش پایین اومد و حیبت عبد المطلی او را پایین کشید اینجا که حضرت یوسف علیه صلات و هست که حیبت حضرت یوسف علیه صلات و سلام, صلات و سلام رو به این طرف مرعوب که پایین بی آید وقتی حضرت يوسف عليه السلام اونجا حاضر شد، از تیغ برد روال لباسی با آخرانه پوشانیده شد و در کاخ پادشاه حاضر شد با زبان عربی صحبت کرد. السلام علیکم. پادشاه او این زبانو من نمیدونم، اما قبلا برایش ما گفتن فرد پادشاه از نسل عرب بود. این عربی هست و احوال پورسی را با زبان ابرانی کرده. و این زبانی هست گفت زبان زبان کنعان هست اهل کنعان که کی اطراف فلسطین است و امروزی هم کنعان تقریبا شهر الخلیل هست داخل فلسطین شهر الخلیل شهر خیلی بزرگ اون شهر کنعان قدیمی هست که قبل حضرت یوسف حضرت یوسف که بعد ها منتقل شو حضرت ابراهیم و حضرت اسحاق هم در الخلیل هستند هست مورد حالا مردم گیرند دورای زیارت یا دعا بیخونند حالوز هم این مثل قبران ها مشخص هستند بعد با زبانهای دیگر با پادشاه صحبت کرد چرای جوری کرد؟ پادشاه چندین زبان را بلد بود خیلی زیاد بلد بود حضرت یوسف علیه السلام با تمام زبانها با او صحبت کرد و با با زبانهای مختلف صحبت میکرد، و پادشاه خیلی مرعوب شد تمام های پادشاه رو بیدونیست و غیر از اون عربی و عبرالیم صحبت که پادشاه نبیدونیست این چیز مقام حضرت یوسف علیه صلات و سلام را در قلب پادشاه افزایش داد موقعیتش خیلی زفت بالا بعد از اون پادشاه وقتی که با هم نشستن خلوت کرده دوباره خواب و تعریف کرد گفت که الله خواب تعبیر خواب من رسیده اما میخم که مستقیم از خودت بشنبم برای من تعریفش کن باره و خودش پادشاه گفت من خواب عجیبی دیدم از دود نیل خوشک بود اول هفتا گاوه و شلق اومد بعد از اون هفت گاوه لاغر اومد دارای نیشه های بودن خورتم های بودن امونم بر اینها پریدن اینها رو خوردن خیلی تعجب کردم که این چه داستانی هست دیدم که هفت خوشه از یک به ریشه بیرون آمده بودند سبز بودند بعد از اون هفت خوشه خشک اینها خشک بودند سیاه شدند آتیش گرفت و اینها را از بین بردم خیلی ترسیدم از خواب بیدار شدم حضرت یوسف علیه السلام و بار دیگر خواب را تعبیر کرد و در تعبیر خواب دو نقطه زریفی های ظریفی اشاره کرد چیزهایی قبلا قبلن با اون قاسد تعریف نکردی بود اینجا برای خود پادشاه تعریف می کرد و بعد گفت که هفت سال می آید آوادی بعد از اون هفت سال دیگه خوشصالی هست وقتی که اینجوری بیا خیلی مشکلات بزرگی می آید و در این هفت سال اول بعد شما برای هفت سال بعد اینجا چارجوی کنید. کشاورزی کنید آزوگها رو انجا دیگه انبار کنید ذخیره کنید برای هفت سال خوش سالی این گاوهای گاوی چاق همین است، چون همیشه گاو در خود ها در کشاورزی هم برای کشاورزی کشاور، هست در کشاورزی خیلی زیاد به کار میره و برای سرمایداری هم گاو خیلی چیزی خوبی هست بخاطر حضرت یسو علیہ السلام بین, تعبیر بین خواب تعبیری این چنینی فرمودن بعد فرمودن در این هفت سال اگر شما بر سنگی هم تخ بریزی سبز میشه این هفت سال سال برکتی اگر روی سنگی روی هر جا تخ پاشی کنید و کشاورزی کنید این میتونی مسئولات رو کنید بعد از اون خوشتالی می آید و مصیبت بزرگی می آید. وقتی که دوزیات زیادی رو بیان کرد و راهکارها رو برای پادشاه بیان کرد. پادشاه انجام دیگه، چون که این در توان پادشاه نبود، این تدبیر گوهره این هارو کی میتونه مدیریت بکنه؟ مدیریت این امور دست؟ چه کسی میتونه باشه؟ این حضرت یوسف علیه السلام فرمودن که من بر این پست قرار بده. تو اول فرمودن پادشاه الله میفانه که وقایل ملک اتونی بی استخلاص فر نفسه. بیارید. این را که استخلاص نفسی من این را برای خودم خصوصی قرار میدم مشاور خصوصی خودم قرار میدم یوسف علیه الصلاۃ و السلام را وقتی که آوردن صبحه ها رو شبیذ عقل و درایت حضرت یوسف را وقتی که مشاهده کرد از یک موقعیت بسیار بالای برخوردار شد ابا پر بودن که الله میفرماید انک لذئ انک جو لذرا مکینن امین یوسف این روز تو بار پیشوا با دیگه مکینون امین تو الله خیلی داره جایگاه ویجی هستی و خیلی اماندار هستی. اینجا مفسرین می‌فرمایند که وقتی که اون جایگاه ویژه در قلب ها رفت و امانداری یوسف عليه السلام به اثبات رسید دیدند که پادشاه خواب دیده و یوسفی داخل زند دوازده سال در زندان بود. اما هنگام خواب تعبیر خواب خیلی با امانتداری بالا خواب و تعریف کرد اینجوری نگفت حالا این ہاک کو بند زندان کردن اذیت کر حالا من چرا ما چرا این ہاک کو مدد نہ بذار فلاج بشن و فقط انجا مصر فلاج بھی شود آسی بیشتر بمصر بود ان باوجود این حضرت یوسف علیہ و والسلام انتقام نگرفتند و خواب را به صورتی حقش بود تعبیر به بخاطی فرمودند که. لدین مکین و امین پیش ما خیلی جایگاه ویژه ای داریم. اینجا هم حضرت یوسف علیه صلات و سلام این جایگاه چگونی حاصل کرد بعضی این پادشا وقتی که صحبتار و شنید یوسف علیه صلات و سلام را پیش خودش خصوصی نگه داشت از غذا خودش بهش میداد از لوشی دنیا خودش بش غذا میداد در صفر خودش میلشان خیلی احترام ویجی بیوسف قائل شده و طبق بعضی از روایات تا یک سال پیش پادشاه پادشاه خواست که او را خوب آزمایش کنه. وقتی که صداقتش کامل به اثبات رسید پادشاه اومد تمام پادشاهی مصر را به او با کر. بعد کر با با و کرد. بعد طبق بعضی روایات ای تختی درست کرد با طلا، با یاقوت و زمرد، با خیلی جواهرات بزرگ، تختی درست کرد برای حضرت یوسف علیه صلات و سلام. یک لباس فاخرانه به تنش کرد انگشتر مخصوص پادشاه رو به دستش گذاشت اقتادی شاندار درست کرد تا روز سر حضرت یوسف بذاره وقتی حضرت یوسف علیه الصلاۃ را فراخاندن فرمودن که من این تخت وارش میشینم ملک تو را مضبوط می‌کنم محکم و استحکام ملک بالا میره و با این انگشتری که دادید و تمام امورت را من اجازه دیگه مدیریت میکنم اما تاج لباسار و پوشش این تاج که این لباس من نیست من تاج به سر نمیگذارم چون نبی بود و فرمود این لباس لباس من نیست این تاج رو من قبول نمی کنم اما باقی کارها رو پذیرفتند طبق بعضی از روایات بعد پادشاه گفت که حالا تمام اختیارات مصر مال تو هستم تمام اختیارات مصر مال تو هر کاری میخواید بکنیم همه ما اطاعت میکنیم فقط پادشاهی معلمنه پادشاه معلمنه نامش معلمن اما اختیار معلمنه تبقی بایدی از روایات کلا پادشاه دیگه گیری کنار، کنارگیری از حق رامی اسمن پادشاه بود و چون در نصر دواره جاریم شد است. اما تمام اختیارات پادشاهی را به حضرت یوسف علیه صلی اللہ واغذار کرده این بود که الله بی فرماند که مکان و لدین و امین خیلی داره جایگاه ویژی هستیده و هم ما و ایمانداری تو امانداری تو اعتماد داریم. نگا کنیجا پادشاہ کافر کاخر بیدین فیران بود ریان ابن ولید با اما وقتی که اون توانمندی حضرت یوسو علیہ السلام به اس بات رسید پادشاه از اون توانمندی یوسو علیه السلام استفاده کرد اللہ رب العالم داره درس میده به حکام اون اصبات را بذارید کنار پادشاهی کافر بیدینی داره از یک مومن مسلمان نبی کار میگیره و تمام اختیارات گوه و گزار می کند پس این از که باید در امور از افراد لایق و شایسته باید استفاده بیشه و این از که باید باید در اینجا که تأثیرات بعد کنار گذاشت. الله هم ببینیم اگر پیشرفت جهان کو، الله کشواره اسلامی که شاهنشاهی است، الله پدر پسرن، اگر لایق باشه نالائق باشه منتقل میشه. اما اگر جهان غرب، حالا هم نگاه کنید چرا جهان غرب این قدر پیشرفت کرده، در هر چیز پیشرفت کرده؟ چون م... چون که میارونها از این میارای الہی استفاده میکنن، مؤمن نیستن. اما کاره های مومنان را انجام میدن. در خود میاره های انتخاباتی اونها خیلی ببینی در کل جهان غیر از مسلمانها در کل جهان را ببینی در پست های بزرگ از اطبای خارجی استفاده میکنن، وزیر هستن فرموندار هستن استاندار هستن پست های خیلی بالایی دارن حتی من رئیس جمهور قبلی اوبا اوباما اکی امریکا اصلا امریکایی نبودون افریقایی بود. اما اصالت داشت و به اون پستها رسید در تایین پوستها اون توانمندی را رعایت میکنند میبینید که داره پیشرفت هم میکنند کشور اسلامی عموماً داره حالا پدر پسر ها. از پدر پسر منتقل میشه شاهنشاهی و همیشه در اغد میمونند این درسی است که الله رب العالوی اینجا داد که توانمند قدرتمند باید پوستها به او واگذار میشه و همین کارون پادشاه کرد و احترام حضرت یوسف علیه و سلام را نگه داشت و بعد این است که قال جعلی علی خضائن الارض. حضرت یوسف علیه صلی و سلام که حالا منو حالا وزیر مالیا وزیر اقتصاد کشوری قرار بده. اینجا حضرت یوسف علیه صلی و چیزی دیگر نخواست چون گفت که حالا این کار چگونی انجام بدم و حضرت یوسف فرموندن قهتی بر تو می ای آید بسیار سنگین که مصر را کلن فلج می کند و این قطع دور هم میره. افراد دیگر هم پیش تو می برای کمک کردم. اگر اینجا درست مدیریت بشه از این هفت سال درست عمل بکنی و اینها رو جمعوری بکنی در خزانه های مختلف در انبار های مختلی اینها وقتی که انبار میشن بعد از دور افراد میآیند. ما میتونی با قیمت خیلی معمولی اینها رو گله ها رو بفروشی وقتی اینها فروخته شدن میبینیم که یک پول خیلی زیادی به خزانه تو برمیگرده یعنی خزان انقدر پر از مال و ثروت میشه که هرگز اون ما در خزانه تو نامده اومده اینها وقتی که حضرت یوسف فرمودن گفت حالا من نمیتونم گفت حالا با خودت این کار انجام بدی فرمود که اجعننی علی خزان الارض منو خزاندارت بکون فادشاه تمام خزانه شا شاهی خود را در اختیار حضرت یوسف گذا این تو این خزانه و کل مسئولیت دست تو اراکین دولت را فراخن و در جلوی اراکین دولتش همه را وادار به اطاعت از حضرت یوسف علیه السلام و سلام کرد حضرت یوسف علیه السلام و سلام وقتی این پست را گرفتن در کل مصر آزادانه میگه حضرت دوستاش میره خاخودرس میکرد میتونه تمام اختیار دست خودش بود تمام از او اطاعت میکردم در روستاها را در شهرها را و همه مردم را اون تدابیر رفع بلا و مصیبت قحط برای مردم بیان میکرده و دستو برای شاورزی میداد و در هر روستایی که میرسه همونجا بار درست میکرد سیلوهای گندم را در روستاها درست میکرد در شهرها درست میکرد اطراف نگهداری میکرد چون برای تقسیم و و که از مدرسانی آسانتر میشه اگه همه در پای تاق میرفتم از ازگیت شده. جاهای وقتلی نهار رو جمعوری کردم و کار میکردم و خیلی فراوان این چیز آمد اینجا حضرت فرمود فریمون طلب کرد این الله اللہ الارض که منو این وزیر مالیات کن وقتی که اینجوری فرمودن پادشاهم هنوزم مسلمان شده بود کل مثل در حال سلمان شدن بود دست یوسف علیه السلام را رد نمی کردن. بار بار اصرار که پیش پادشاه قافل از او هم نبود و بالآخر پادشاه هم مسلمان شد پادشاه اما هنگامی که این مسئولیت بزرگ را به حضرت یوسف علیه السلام واگذار کردن فوتیفار یا اتفیر قبلا گفتی او را از پستش برکنار کرد. و مسئولیت را به حضرت یوسف علیه السلام داد چون که تو سو انجام ده و بعد از مدتی هم وزیر عزیز مصر سابق از بین رفت و حضرت یوسف علیه السلام بنوان عزیز مصر مشهور شده و حالا همسرش زلیخا که همونجا حالا تکلیف زلیخا چه شده گفن جلوتر میگیم حالا اینجا هست تکلیف زلیخا حالا زلیخا دیگن که زولیخار دوباره پادشا به عقد حضرت یوسف در آورد اینجی قول است که ابن کسی اللهم قرطبی و خیلی زیاد و حتی اللهم رازی امام رازی خیلی از مفسری همین قولو اختیار کردیان که پادشاه پادشا اومد را به عقد حضرت یوسف در آورد وقتی که در عقد حضرت یوسف آمد و بعد ازون الله اللہ رب العالمی محبت خیلی زیاد در قلب یوسف انداخت و محبت زولیخا کمتر شد. بعد حضرت یوسف روزیز گفت که خیلی تعجب حالا که اون وقت تو این قدر وابسته من بوده این همین محبت حالا کمتر شده و من بی... وابستگی من بیشتر شده فرمودن که بله حالا تو بنا به خدا رسونده وقتی به یک محبوب واقعی رسونده دی دیگه اونجا محبت میکنم میگن که دوتا فرزدن هم از زلیخا حضرت مستوف داره یک افراین بوده و یک فرزند دیگر که دوباره دختر رحمت دختری بود که مادر حضرت ایوب هم دیگه از همین نسل هست بعضی چنین قولی دارند اما بعضی معتقدند که این نکاح صورت نگرفته چرا صورت نگرفت چون که زلیخا دیگه برای فساد اقدام کرد و الله رب چنین خانوم های رو در بیت نبوت نمی براد. این از بیت نبوت بری از خانمی که دنبال فحشا بود همسر پیغمبری بیشه اما اونها که میگن که همسر شده میگن ها گناهی نکه اراده کرد اما به گناه نرسید و وقتی که حضرت یوسف علیه السلام زلیخا رو گرفت بعد از اون میگن زلیخا هنوز هم دو شیزه بود یعنی بیوه نبود بانو نبود هنوز هم همون دو شیزهگی محفوظ مانده بود و دوشیزه بود اونجا و بعد هم زلیخا گفت تو میدونی که عزیزه میزره شخصی ناتوان و مردانگی نداشته و من مثل سابقه من همون دختری قبلا ها بودم و زیبایی زلیخا هم که زبانزد کل ها بود به هر حال بعضی جوری گفته اما بعضی میگن که نکای صورت نگرفت در قرآن و احادیث که روایت صحیح آمده باشه که حضرت یوسف علیه سلات و سنزوله خار عقد کرد چنین چیزی وجود نداره وقتی وجود نداره پس اینجا ما توقف میکنیم ما والله عالم عقد کرد یا عقدی صورت نگرفته اما اونهایی که میگن نگرفته بیشتر به اسمت انبیاء اونچین هزیدیگتر هست به هر حال حضرت یوسف علیه سلات و سلام وقتی که این کل مسئولیت بزر را پادشاه و کرد و اینجا الله رب العالمین جلوتر می فرماید که و کذارک مکننا لیوسف الله رب العالمین اینجا حضرت یوسف دعای کرد پادشاه پیشنهاده اجعلنی علا خزان الارض نبی مکرم اسلام فرموده اگر یوسف همون زمان اول که میسر آمده همونجا همون جا همه من دعا رب می کرد که منو بر میسر تمکین بده الله همون زمان او رو وزیر میکرد. اما خودش اون زمان نخواست و دعا نکرد حالا بعد از این همثال تکالیف الله دوباره به این چیزش رسید اینجا الله فرمود و کذالک مکن علی این آیه دوبار تکرار شده اونجا اول که عزیز مصر حضرت یوسف را خرید اونجا هم تکرار شده بود اونجا آمده بود که و کذالک مکن علی کتابی احادیث بیشتریم بدین کتابی خوبش بگیم اینجا دوباره آماده و که دلیل مکان نالویوسو ما یوسف را کمکی دادیم حالا اینجا یک درسی را که اینجا که به سلام در در این آیه دو پیام هست پیام اول که اونجا فرمودن وقتی عزیزی مست خریدن که و کذالک مکنه لیوسف اونجا معنی دیگری داشت یعنی ابتدای رشد یوسف شروع شده یعنی ما تمکین داد یوسف یک معنی داشت تمکینی بوده؟ در قلوب مردم تمکین یافت. و اون محبت و ابتدای رشد یوسف بود که دیگران از اون از اون استاد یوسف علیه الصلاۃ خبر السلام خبردار شدند اینجا الله میگه وکذلی ما حالا این مکنای کون بوده یعنی کامل مصر را در اختیارش گزارشتی اول قلبه در اختیارش اومدن حالا کل مصر حکومت مصر الله رب العالمین در اختیار یوسف علیه السلام قرار دادم همین یک سوالی هست که حضرت یوسف علیه السلام در هنگامی که به پیش فادش و حبود طلب پوستی کرد طلب این بود که منو بانوان مسئول مالیات یا وزیر اقتصاد خودت قرار میده. آیا طلب پست جائزه؟ جائز نیست علماء می فرماید چون حدیثی داریم که نبی مکرن سلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند که اگر کسی پوستی را طلب بکند به همون پوست واگذار میشه وقتی واقضار پوست دیشه یعنی کہ اللہ رب العالمین کو محت نمی کنی اردین کسی پوست تلا بکنی نبی مکرمی اسلام نائمی میکرد. تلی پوست ہارو نمی تذیرو اگر کسی هم تلا بکنی زمان نبی مکرمی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پوست را بکنی واقضار نمی کنی جو یوسف علیہ السلام چرا تلی پوستی کنی جواب شیناس کے چونکہ یوسف علیہ السلام تنہا شخصی بود کے میتونست این قهف کشنده را مهار بکنه و هیچ کس غیر از خودش این توانمندی را نداشت اگر شخصی هم در مورد م... کاری توانمند باشه و بتونه ایک را خیلی مدیریت بکنه اونجا وزیفه شد و اون چیز رو طلب بکنه یا میدونست که اگر من این کار را انجام ندم و حق دیگران مظلومین ضایع میشه اینجا هم باید برای احیاء حق دیگران اقدام بکنه اینجا ضایع شدن حقوق مسیحا که خیلی زی امکان زیادی داشت حقوق تو که حقوق ضایع میشدن تو نمیتونستان ایران مدیریت بکنه الا یوسف علیه الصلاۃ و السلام به تنهایی این کارو میتونه بکنه سوال بعدی هست که خودی پادشاه پادشاه ظالمی بود کافر بود آیا فذیرفتن پوست در حکومت حائز ظالم جایز جایز نیست اینجا بقول هست یکی را علامه جساس نقل کرده یکی هم اور مفتی محمد شفیع رحمتہ اللہ علیہ کرده اند اگر در حکومت های ظالم و کفر قبول کردن پست برای اینکه ما بتونیم حق مظلوم را احیاب بکنیم یا قبول کردن پست به این نیت که من پست را می پذیرم چون که بتونم در این مسئولیت به اسلام خدمتی بکنم به مؤمنین خدمتی بکنم چنین پستی را پذیرفتن جایز هست و هده تویستو علیه السلام در حکومت کفر مستقبول کرد بلکه به اینکه تمام کفر را به اسلام برگردان و همه کفر را مسلمان کرد و خود هم مسلمان شد چنین مسئولیتی را کسی بیتونی قبول کنه؟ که کل را و رخ داستان را به طرف صلاح صاوغده هده چنین شخصی که خیلی موافقه ما به این صورت در اسلام هم مثالی داریم زمانی که عبدالله ابن بی ابن سلول فوت کرد رئیس المنافقین بود و سیاد کردی بود که نبی مکرم اسلام نماز جنازه بنا بخونه نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیه وسلم نماز جنازه شخون حضرت عمر ابن خطاب اعتراض کرد حتی نبی که لباس خود رحم بشداد در لباس نبی کریم کفن شده در لباس نبی کریم کفن شده وقتی که لباس نبی کریم داده شده و نبی کریم نماز جناده شخون حضرت عمر اعتراض کرد مگه این کافر نبوده این اذیت نکرد چرا شما داری بر جناده چنین شخصی حاضر میشین؟ وقتی اعتراضات زیاد بودن نبی مکرن اسلام فرمودند که الله که منو من نکرده الله وقتی تو هفتاد ولی استغفار بخو من نمی بخشم من بیشتر میخونم از هفتادوار هم بیشتر میخونم جر رحم نبی کریم اما در بعضی از روایت یک جمله جالید اومده فرمودن که من امروز نماز جنازه این منافق راگر میخونم من امیدوارم که هزار نفر از قوم این مسلمان میشن من بخاطر این کار انجام میدم بعدها همین مسئله پیش اومده هزار نفر از قوم عبدالله بن و بیبن سلول مسلمان شدن پس اینجا هم به اینی حضرت یوسف علیه و السلام اگر این مسئولیت را پذیرفت، پذیرفتن مسئولیت و خاطر این بود که بتونن مصر را کامل در اختیار بگیرن و کل مصر را مسلمان بکنن و میتونه که به اون افراد فغیر و قحطزده‌ای که در دور از مصر در کنعان اصابت حسابتی نکنه اونها رو هم به با اسلام بیاورد و اونها رو کمک بکنه و مسلمان‌های دست را کمک بکنه پس پذیرفتن اسلام پس در خود حکومت اسلامی اشکالی ندارد. پس نابر این است که الله رب الاعلی میفرماند که ما و کزالت مکان ما بیوسو جادا در زمین. هر جا بخواد جابگیر، اینجا ورو آنجا برو ان هر جا میرد جایش بود هر جا میرد مکانش شود، هر جا میره حاکم همون جا و پادشاه همون جا بود. به خاطر این الله رب الاعلی میفرماند که این همه رو یوسف علیه صلات و برداش کرده از کجا تا کجا آمدن با این همه سختی ها اللہ رب العالمی فرمان که حالا که ما دادیم فِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ همرا با هر سختی آسانی هست فِنَّمَعَ اسری يُسْرَ دوباره تکرار کردم علمامی میفرمایند که هرگاه یک نکرایی دولار تکرار بشه یعنی اینجا دو چیز متفاوت هستان اللہ رب اسری فر انما عل اسر اسر امر با سختی آسانی هست همرا با سختی آسانی یعنی همرا بر هر تختی دو خوشی هست اینجا حضرت یوسف علیه الصلاۃ والسلام دو چیز بزرگ را حاصل کرد یک آزادی از زندان و دو این از حکومت سراستری مصر را تصاحب کردند و بعد الله می فرمایند که نسیب رحمتنا من نشا ولا و عجر المحسنين ما اجر محسنین را ضایع نمی‌کنیم. اینجا یک دست دیگری هست. الله رب العالمین فرماید که عاقبت امور دست متقیین هست دست پرهیزگاران هست اونهایی که صادقاً در کارها خودشان در نیاد خودشان ظاهر امر اگر به خلاف اونها باشه، اما عاقبت امر اینها میرسه. اگر به ظاهر کسی بنا فساد خودش درنگی خود چیزی رو تصاحب بکنه، اما آینده الله رب العالمین این نقش رو برمیگردونه و حق را به حقداری بده که متقی باشه پس حکومت سیادت و بزرگی همیشه زانه فرہیزداراں و متقیین هست. این در کل تاریخ این ثابت شده از اینجا هم نگاه است و علیه السلام انسان محسن خیرخواه و خیراندی اندیشی بود کسانی خیرخواه انسانیت باشند الله رب العالمین تمکین عرض را به اونها نسید میکنم اینجا حضرت یوسف علیه السلام خیرخواه کل انسانها بود الله رب العالمین در تمام دلها برش جا پیدا کرد و اختر کل آدمها را به یوسف علیه السلام قرار داد این هست که خیرخواه بودن و خیر اندیش بودن عاقبت امور دستکنی افرادی بی افتن حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی خیرخواه بود خرخاین خیر ختیجری خیر خاین بوده. ترمود که من اراضی را تقسیم نمیکنم زمین ها را میگذارم تا برای آیندگانی که می آیند این اراضی به بهره بگیرند و حکومت ها کنترل بشن. این قاض خیر الله رب العالمین بزرگترین امپراتوری های دنیا را زیر دست حضرت عمر بن خطاب آوردم. تمام تمکین ارز را الله رب العالمین به عمر بن خطاب دادم. اِفراطوری دو تا گور در دنیا زندگی میکردن که همیشه برای انسانها ها ظلم میکردند یکی فارس بود یکی روم بود هر دو تار حضرت عمر ابن خطاب از بین برد غیر از دونوها شش تا اِفراطوری دیگه رو سرنگون کرد پس خیرخواه بودن برای امه متقی بوده الله رب العالمین تمکین زمین و ارض را بهنها نصیب میکند این هم الله رب العالمین در سور یوسف داره این درست را برای مردم میدهند. هم پس بنابراین یوسف علیه و السلام بعد از این که مصر سال در مشکور مشغول بودن کشاورزی ها رو کردن بعد از اون قحط اومد وقتی قحط شروع شده انگام قحط آمدن حضرت یوسف علیه السلاط و السلام در اون قحط کاری کردن حالا جیره کردند. کردن اوناهایی که خدسو میخوردن کم کم میدارد و بعد از اون دیگه در سور داد در کاخ فیران ریان یعنی ابن ولیدو در سور داد که روزی فقط یک واده قضا درست میشه خودش فقط روزی یک واده قضا میخورد و تمام عراقی دولت هم مکلت که روزی یک وعد قضا بیشتر نمیخورید شما من نمیخورم حکمران بود و شما هم نمیخورید در کاخ یوسف علیه صلی و سلام و پادشاه وقت فقط روزی فقط زهر قضا پخته میشد. قرم که ما باید مانند مردم باشیم شبیه مردم زندگی بکنی فقر اونها رو بگیریم و او فقر اونها احساس بکنی تا بتونیم از این قحط مصیبت بزرگ بریم بیرون ما همین کار رو انجام با و همین صورت زندگی خودش را اداره میکند. به همین شکل زمانی که مدینه منور قحط اومد در زمان حضرت امیر المومنی عمر بن خطا رضی الله تعالی او از هر طرف اموال سرازی شدن از مصر چطرهای فراوانی به طرف مدیری منوریم فرستاده شد از هر جایی آزدوغ ها می رسیدن حضرت عمری بن خطاب رضی الله تعالی عنه خودشان بالدیگه ها می نشست. و غذا تقسیمی کرد که دود از ریشن وارکه حضرت امیر رد می شد اونا رو سیاه می کرد. و آخر کار وقتی غذا تقسیمی کرد مثل یکی خادم کوچه زرف کوچه که میگره یه گوشی میرشاست و چند تا لقمه می همین کارو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ و تعالی در قحط مدینه منوره انجام داد اونجا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام هم در همین کار اونجا روزی یک واده قضا میخوردن خوردند تا یک مردم احساس بنم این قحط رفته رفته در کل مصر مصر فرا گرفت شاخ های دور دست هم رفتن تا این که مردم از جاهد دیگه می اومدان وقتی که مردم می اومدان علی روایت اومده حافظ ابن کسیر اون بیان کرده است وقتی که مصری ها برای قضا نمی اومدان ازوغه مال حکومت بود از اونا پول خیلی مختصری می پوست می گرفتن اونها رو گذاشتن سالی که هر سالی یک بار آزوغی می داد چقدر میداد برای هر نفری 180 کیلو میداد 180 کیلو گندم برای یک سال و کم کم بخورند و به صورتی باید باشه که روز یه باید قضا هم نخورند. حالا میداد سال اول اومد که مردم پول آوردن پول حق تمام شدن دواره بیگم وسائل آوردن وسائلات تمام شدن چیز دیگر آوردن تا این که بعضی گفتن که خودشون فروخت دست یوسف خود را فروختن و عبدت یوسف علیه السلام ماله کل مستیحا قرار گره این روایت در اسرائیلی هست اما چونکه رد آن در احادیث نامده در اینجا فقط میگه میکنی سکوت میکنین کنی رد می کنیم تصدیق می امکان هم داره و امکان هم نداره بی هر حال و اللہ رب العالمین بود تمکین حضرت یوسف علیه صلات و سلام بر مستیحا بعدها دیگه از دور و اطراف که کن آنی ها اومدن اللہ مختصر میگه چونکه فکر روز آخر هستو شب آخر داستان هم نرسیم آخر داستان دور ہے تازه نیست تا انجا رسید بینا آخر داستان دور اما پر غیب این میگن که دوباره برادرها آمدن برادر یوسف علیه السلام و سر آمدن یوسف انها را شناخت انها یوسف را نشناختن چرا؟ چون چه... این زمان حضرت یوسف چهر سال عمر داشت بعض میگن که بالات بیشتر عمر داشت چونکه تغیب از درواج هر صار تغیب از راهش تا صار و الله عالم. اینجا آقایان برادران یوسف علیه السلام را نشون چون اونها بایه باید کاروان فروخته بودن فکر میکن علاوه بر خانوابی اونجا وردی از زندگی میکنه. نمیدونستند که یوسف همون کسی هست که اونجا نشسته و شاه مصر شده و کرآن بزرگ میسره. وقتی که یص باو خرسالی تن ها رہا کردی بو اما زہانت و زکاوت پیغمبران او باز وجود داشت اونها رو دیر و شناخت اینها برادرانم با اونها صحبت کرد از لهجه های اونها میفهمی میکر صحبت میکرد تا خوب اونها رو بشناسه اونها برخ خودش دعوت کرد داخل کاخ ورد صبح بعد اونها گفت مسی شما جاسوسی اینجای نیستید دهدی شما که مسی نیست کنانی جاسوس گفت نه ما جاسوس نیستیم ما اگر بنر زاده پدر ما یعقوب هست بیشتر بی که و دواره بیشتر می‌پرسید که پدر شما اون چند تا ما دوازده تا برادری یکی قبلها از دست ما رفته یک پیش پدرمون داستان تعریف می‌گه تا کامل اونها را و خیلی مورد احترام و احترام قرار دا. از اونها درست پذیرایی کرد و اونها بهترین وصال بود در اختیار اونها گذاشت اما در هنگام بعد رأی کردن چیزی ها داد که برای همه دادی بود بیشتر ازجان داد برای هر نفر یک بارشطور میداد و ط یک روای یک بار اللااق بوده به هر حال و بارها اواقق بوده بارها شطور بودن. هر حال بودونه همین قدر داد فقط پله ها رو پس داد و داد دوباره دا بر بگردن یک تدبیری بود که از ها رو پسنا میداد نه بر نمیگشتم چه امکان تا ی نک بر یا هست. یاقوب پیغمبره بدون که پولها برگشت داده شده بدونی پولها امانتن مال پادشاهان و باید پولها دوباره برمیگرداره و یاقوب علیه الصلاۃ و السلام مجبوراً واری نهارو میفرسته پیشبن تا اون روابط خانوادگی جا محفوظ بشه به خاطری پولها دوباره داره کالاها ها گذشت درحال الله رب بعد از این همه سختی و مشاقات حضرت نوستر علیه و السلام را عبارت ترین مقام رسان هم به اعتبار معنوی بالاترین مقام بود که پیغمبر بود و هم به اعتبار پادشاهی و ظاهری سیاسی هم بالاترین مقام مصر قرار گرفت